عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیز یاران همراه علاقمندان به قصه های کوهن پارسی به ویژه به داستان های شیرین و پنداموز شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی با برنامه دیگه از سری برنامه های داستان شاهنامه فردوسی در خدمت شما هستیم بعد از اتمام ماجرای زحاک ماردوش و شیطان صفت و به سلطنت رسیدن فریدون پاک نجاد میرسیم به به سه پسر فریدون ایرج سلم و تور با ما همراه باشید در این قصه فریدون بعد از اینکه به پادشاهی رسید دوبار ازدواج کرد و صاحب سه فرزند پسر شد از یکی از همسرانش به اسم شهرناز دو پسر به نام های سلم و تور به دنیا آمد و همسر دیگر شهرنواز نیز پسری به نام ایرج به دنیا آورد. در دوران فریدون سرزمین ایران غرق در آرامش و شادی بود و فریدون با ادالت و مهربانی با مردم رفتار میکرد سالها به خوبی و خوشی گذشت تا اینکه پسرای فریدون به سن جوانی رسیدند و فریدون تصمیم گرفت که برای هر سه اونها همسرانی رو انتخاب کنه برای پیدا کردن سه دختر که در شن و لیاقت پسران فریدون پادشاه ایران زمین باشند همه جا رو گشتند تا اینکه در سرزمین یمن پادشاه یمن رو پیدا کردند که سه دختر زیبا و شایسته داشت و فریدون یکی از وزراش رو برای خواستگاری به پلکت یمن فرستاد. شاه یمن با این ازدواج موافقت کرد البته در ابتدای قضیه و موافقت ماجرا از این قرار بود که یمن یک کشور کوچیک و پادشاهی خیلی کوچیکی بود اما سرزمین ایران یک امپراتوری قدرتمند و پادشاه یمن به خودش این جرأت و جسارت رو نمیداد که به فرستاده فریدون جواب رد بده اما بعد از اینکه بالاخره با پسرها آشنا شد و آزمایش کرد و آزمونهایی رو از اونها گرفت و امتحانهایی پس دادند دید که نه این سه پسر جوان شایستگی ازدواج با سه شاهزاد خانم یمنی رو دارند و به این ترتیب مراسم ازدواج و، جشن عروسی سپسر به طور همزمان برگزار شد و اونها عروساشون رو با خودشون به سرزمین ایران آوردند. باز هم زندگی به خوبی و خوشی ادامه پیدا کرد تا اینکه فریدون که دیگه به دوره میانسالی رسیده بود تصمیم جدیدی گرفت و گفت که الان زمان اون رسیده که من قلمرو خودم رو بین فرزندانم تقسیم کنم و یک روز از روزها سه پسر رو احزار کرد و به اونها گفت پسر عزیزم من سالهای زیادی بر این کشور پهناور سلطنت کردم و اکنون دیگه نوبت شماست که خودتون رو نشون بدید و به جای من به تخت سلطنت تکیه بزنید سلموتور با شنیدن حرفای پدرشون با خوشحالی قبول کردند و منتظر تقسیم قلمرو میون خودشون بودند اما ایرج پسر کوچکتر که قلب بسیار مهربونی داشت زیر بار نرفت و گفت پدر عزیزم شما هنوز هم محبوب ایرونیا هستی و برای اینکه از سلطنت کناره گیری کنی خیلی زوده فریدون آهی کشید و گفت پسر عزیزم این کاریه که بالاخره باید به با انجام برسه یه روزی من باید این کارو انجام بدم و برای همین از الان تصمیمم رو گرفتم و قلم روی سلطنت خودم رو بین شما سه نفر میخوام تقسیم کنم اگه تو کارتون مشکلی بود و کمکی خواستید تا من زندم همیشه در کنارتون هستم ایرج سرش و پایین انداخت و در سکوت به حرفهای پدرش گوش میکرد سلم وتور جاهطلب هم مشتاقانه به لبهای فریدون چشم دوخته بودند تا ببینند که کدوم قسمت از این قلمرو بزرگ به اونها میرسه فریدون اینجوری ادامه داد من سرزمین تحت فرمان روایی خودم یعنی ایران بزرگ رو به سه بخش مساوی تقسیم کردم بخش اول روم و خاوره که اون رو به دست پسرم سلم میسپرم. امیدوارم با ادالت به این سرزمین ها حکمرانی کنه و اما بخش دوم که ترکستان و چینه اون رو به پسر دیگم تور میبخشم و دلم میخواد بهتر و شایسته تر از من اون سرزمین ها رو اداره کنه و اما بخش بعدی یا بخش مرکزی خود ایران و دشت سوارانه که اون رو به ایرج سپرم و از ازون میخوام که آرامشی رو که من تا امروز در ایران به وجود آوردم و آسایش و راحتی رو که برای مردم ایران فراهم کردم همیشه برقرار نگه داره. و بعد هم نصیحت میکنه که پسرانم عزیزم از این به بعد شما باید با تلاش و پشتکار فراوان خودتون برای آبادانی و آرامش قلم تحت حکومتتون کوشش کنین و لحظه نباید آروم قرار داشته باشید و در عین حال باید به همدیگه کمک کنید و پشت و پناه هم باشید. سلماتور با شنیدن اسم قلمروهایی که در اختیارشون قرار گرفته بود خیلی ناراحت شدند، و با دلخوری لشکرهاشون رو برداشتند و هر کدوم به سمت قلمروهای خودشون رفتند. ایرش هم نزد پدرش موند و به جای فریدون بر تخت سلطنت ایران تکیه زد. البته اینو باید درس کنم که این ماجرا در شاهنامه فردوسی بسیار مفصل از اون چیزیه که من امشب خدمتتون ارز کردم اونها آزمون های سختی رو گذروندن تا اینکه لیاقت خودشون رو ثابت کنند و بر اساس همون آزمون بود که فریدون تصمیم گرفت ایرج که از همه داناتر رو با حوشتر بود به پادشاهی ایران برسه و سلم و تور به روم و ترکستان و چین برند این شیوه ی تقسیم بندی و، کاری که فریدون کرد برای دو پسر جاه طلب بزرگتر یعنی سلم و تور بسیار گرون تمام شد و اونها کینه ایرج و پدرشون رو به دل گرفتند و منتظر فرصتی بودند تا با مکر و حیله اون دوتار از سر راه بردارن و خودشون سرزمین ایران رو تصاحب کنن دوباره سالهای بسیار زیادی گذشت و ایرج همچنان بر سرزمین ایران مثل پدرش فریدون با عدل و داد حکومت کرد و پدرش فریدون که دیگه داشت به سالهای پیری نزدیک میشد از اینکه حکومت ایران رو ایرج داده بود بسیار راضی و خشنود بود روزی از روزها سالم که خوشی و راحتی پدرش و ایرج رو میدید با خشم به سراغ برادر دیگش تور رفت و به اون گفت ای برادر پدر ما چندین سال قبل قلمرو خودش رو به صورت نامساوی میون ما تقسیم کرد و ایراج که از همه ما کوچیک‌تره بهترین بخش قلمرو پدر یعنی سرزمین ایران رو به دست آورد آیا به نظر درسته که پدرمون بین ما و ایرج این همه فرق بگذاره و اونو به ما ترجیح بده؟ تور جاه طلب هم به فکر فرو رفت و بعد نگاه زیرکانهی به سلم انداخت و گفت خب ببینم برادر تو نقشهی هم برای برداشتن ایرج از سر راه داری؟ سلم گفت البته که نقشهی دارم اگه تو هم با من همراه بشی پیروزی؟ مال ماست و ما پیروز بیشیم تور قبول کرد که با برادرش همکاری کنه و انتقامشون رو از برادر و پدرشون بگیره خب دوستان عزیز امیدوارم که تا اینجا یه قصه از شنیدن اون لذت برده باشید ادامه داستان سلم و تور و ایرج و فریدون و اون چه که بر اونها میگذر و اتفاقاتی که آینده خواهد افتاد رو در شبهای بعد و قسمتهای بعد با هم پی میگیریم تا برنامه دیگه و شنیدن قصه دیگر از شاهنامه همه شما رو به خداوند بزرگ می سپرم. شاد و پیروز و سربلند باشید